الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلا الله على سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعسومین ولا تدارمت على دائمه الحمد اللهم افرنا جميع المشهدین ورحمنا برحمتك یا الحمد رحمین درستی چند را به غیبت نسبتا همشه مفصلن وارد شده و هم جمله از مشایخ بیزیم این اختزام میکنه که کلیه روایاتی تیره رو که در این باب حالا با مناسبت های مختلف متعرضش بشیم ببینیم که چی از اینها از نتیجه اینها لرمیدن تا اینجا تا این شماهه بزارم بیست دارم دیروز خوندیم و اگه دیروز نخوندیم در کتاب مصادقت و اخوان اسوات اصفات ابن محمد که با همون کتاب قبلیه رفع و النبی قال علا اخفر کن بلدی ها شرب من از و با رجل فی ارز اخی ارز کردیم یک اده تایفه از روایاتی ای که اینجا هم آیه بروجیدی انده م... کتاب آمده و این تایفه از روایات مفاده شده که قیبت اشد ا یک طایفه دیگه همونده که قیبت اشنده از دقیبا به این دو طایفه تمسک شده روی دو سه جهت. مثلا اون طایفه زنا یکی اینکه چون زنا جزو کبائر قیبت هم جزو کبائر چون بحث این طایف از کبائر فضیح در زیدش داره که سرش اینه که اگر در زنا نستجی رو به الله توبه کرد خدا قبول میکنه اما در قیبت حتی ب بله. لاکن حتی خو صاحب همنظر او یا حل اون باید به اصطلاح او رو حلال بکنه. هم عنوان حلال بکنه آمده هم عنوان یک الله رو آمده که اون صاحبش باید بر او استقفار کنه و که کردیم حق با معوم استاده کلیه مثلا حتی یقیفه رو ها صاحبه رو هم آمده، و عنوان به اصطلاح یوهلوهو هم آمده معنی عرف بکنه این هم یک مسئله ایسکه یا کفاره غیبت این است که مقتاب به اولای مقتاب به فرد حلال بکنه یا مثلا استخبار برش بکنه ببخشه داشت عرف بکنه صاحب صاحبها این هم اینشالله ازمین کنیم یکی از عدلش هم همینه که از عدلش این روایاتی که مقارنه بین غیبت و زنا شده لکن این روایات چون ضعیفه نه مطلب اول رو اثبات میکنه و نه مطلب دوم حلا کل حال اشدیتی اگر ثابت بشه این اشدیت فقط به همین لحاظه که باب زنا چون تکلیف علایه صرفه توبه کافیه اینجا نه مثلا صاحبش هم باید حلال بکنه لکن این مطلب ثابت نیست اینشالله اعز میکنم در نتیجه از میکنیم این استحلال یا استفار یا به اصطلاح استغفار له یعنی یا مخاطب فرد حلال بکنه آره. ما رو یا ما برای او استغفار کنیم الله مخفر لفلان این مثلا لمن چپ شو مثلا الله مغفر این هم ثابت نیست نه استغفار لح ثابته نه استحلال ثابته نه اصل و اون چخص ثابته هیچ کسی روینا ثابت نیست سنده دروشنی نداره. از جمله روایه شماره 23 تنبیه الخواتر قال انس خطبانا رسول الله فذکر ذکر و مؤذم روایه که هم که تا حالا اینجا خوندیم از طریق اهل بیت نیامده در مسادر اصحاب ما آمده اما از طریق اهل بیت نیست از طریق اهل سنت این ندر همه رجل من الربا اعظم اندالله فرخطیعه بله من ستن و سلاسین زنیه این کلمه ست و سلاسین یک رمزی بوده در میگم حتی نهارو در عده از لغات یا از لغات عربی هم وجود داره یعنی به عبارت اخرها عدد هفتاد و هفتاد و یک و هفتاد و دو و هفتاد و پنج و چون این عدد وجود داره نصف این همگاهی ذکر میشه هفتاد دو نصفش میشه سی و شیش سی و نصف و هفتاد که مثلا اممت یهود به هفتاد یک فرقه نصارا به هفتاد و دو فرقه مسلونا به هفتاد و... این میگن لفظه هفتاد و یک و دو و سه و یا نصفش سی و شیش و سی و پنج این در اصطلاح بوده که در عده از وقت غیر وقت عرف هم بوده برای تکسر مطلب بوده. باز در نه اصل اون درهمون من الرواش و از روشنی داره نه این که اشد در بودنش و از و وعده کتاب تنبیه حواضر روی ان الناس علی شماره 24 خلا احد الرسول کام لا يرون العباد تام لا صوم و لا في صلات و لكن فك فلكف عن عراض این هم اصلا روایت نیست نقل کرده که مردم اعتقادش این بود البته این مطلب که در اون خطبه شعبانی حضرت هم بلند که امیر و سوال کردن که افضل اعمال در ماهه رمزان حضرتون اجمالا درسته اما این که خصوصی این تعبیر رو ما نداریم بله بعدش هم این نکته که مثلا غیبت جز اعراض مردمه کشف از اعراض مردمه یا کف از اراض ممکنه مورد از کف از اراض مردم مثل اموال و زن و اینجور چیزا باشه شماره 25 در نهج البلاغه قال علی و علیه السلام و قال رسول الله من نشد کتاب‌های شاک شده مدتی چند ساله های به عنوان مستندات نهج البلاغه و اسانید نهج البلاغه در زحمت کشیدند نشد نگاه بکنم بگم که این یکی رو از کجا کردم به هر حال بله. و هوا نقی و راهم دماء المسلمین و اموالهم هم سلیم لسان من اعرازهم این به خاطر این نقطه مطلبش درسته اما به حساب سنت گفت که ارسال درست حدیث شماره 26 در فقه الرزا اینجا گفته عربی عن العالم تو فقه داره زیاد داره عربی عن العالم انهو قال الله ما اعطی مؤمنون خط خیر الدنیا و آخره لا به حسن زن به الله، و رجاعی هی منه و حسن خلقی هی و کفن اختیاب المؤمنی این به خاطر کلمه کیل این فوقش نشون میده حرمت رو این روایت با این مضمون قریبی این در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید کماری 27 آمده ان الباقر قال وجد نافی کتاب علیه علیه السلام خیلی عجیبه این, این چیزی گرم در فقور رزاست یه قطعه از اون کتاب قضای و سننه احتمالا همون کتاب قضای و سنن داشت علایه حاله که کار بسیار خوب ما توی مؤمنون قد خیرن, و خیرن, دن... خیرن خیرن دنیا خیرن دنیا آخره و ب... الا ترک اختیاب و بدتر از همه چیز هم خود اختیابه این رواست مبارکه دلالت بر حرمتش داره هم شمال 26 هم 27 شماره 28 در جامال اخبار ظاهنمان مرحوم قومی آلمان امر مجلسون به غیبه الا به من الدین فنزده و اسما اکن من استماع غیبه این نشون میده که به اصطلاح آثار غیبه در دنیا و نشون میده که اصل حرمت غیبه و استماع غیبه چیزی که تو این اضافه است نزده و اسما اکن من باز در یک روایتی که سند روشنی نظر از ابن عباس شماره 29 آل ممن اقتاب اخاه المسلط بفل صوم و انتقض وضوعه این رو ارز کردن در روایات اهل سنت ان رسول الله وارد شده و توش سه تا هم داره صوم و وضوع و صلات اینجا دوتاش آمده فه اهماته مسئله صومش تو روایت ما هم آمده این روایت که از ایمه علیه مستان شده. اما عند رسول الله صلی الله علیه و اینجا هم صواب اعمال از راه و ها ماته به کذالک ماته به لما حرم الله این ماته توبه نکنه و سابقا هم از کردیم ان شاء وقتی هم کلی آخر دست متعرض میشیم که مناور مشهور نسبت به کبائر توبه واجبه یعنی اینکه از احکام این است که انسان نساد به کبائر توبه بکنه نساد به سرائر نداره و نساد به کبائر داره شاید سابقا هم چند بار شاید چند بار ذکر کردیم ولی بعد دیدم ان متعرض میشه ان شاء حدیثش شماره سی ابو القاسم فی کتاب الاخلاق اینا ها از کتاب مستذک نقل کردن البته ایشون یک شماره زده این دو تا حدیث چون کتاب موصل بوده ایشون توجه نکرده این دو تا شماره باز بشه یکیش منکف فلسانه و انه هراز فی مغیبه هم و فی مشهده هم اقاله الله حسرته و یوم القیامه که یکی از آثار قیبت در روز اگر او چیزی رو دونست از مسلمانه ها نگفت خدا هم عیبهای او رو نمیگه در روز این کاس عمل و عمل عمله بود کوبه همه هست مناسبه همچنان که این ایب دیگران رو پخش نکرد خدا هم ایب خود این روز جهان چون روایاتی که در تجسم اعمال هست بعضی دوش یک سرخ رابطه هست یک تسانفی رابطه معقولی برقرار بعضی اش نمیفهمهون بعضیش واختهش رابطش... این رابطش معقوله این روایت مبارکه رابطش معقوله با اینکه مؤثره هست و قال علیه السلام الغیبت تفته این یه روایت دیگریه زید آورده آل القاله بود ایشون ازش یکی قرار داده البته هم از که نقل شده در کتب اهل سنت هم آمده صوم و وضوع و نماز در کتاب روایت ما از طریقه ایمه علیه مسترم سوم آمده جامعال اخبار قالن نبی من اکتاب مسلمان او مسلمتن لم یقبل الله تعالی و شمار سوی یکی هم همه مرسله ولا سیامه و اربعین لیلتن یومن و لیله اینی که گناهه اصل گناه بودن شوشنه اینی که اربعین یومن و لیله چون به اصطلاح یک اصطلاحی دارن علمایه سنیان دارن ما هم بعدها گرفتن این امور توقیفیه امور توقیفی لا تو علم الا من مثلا سی شبان روز 20 شبان روز چر شبان روز این که چند شبان روز نماز او قبول نمیشه این لا تو علم الا من الله و چون این روایت الان ضعیفه برای اثبات این کار به درد نمیخوریم این هم حکم دوم که احتیاج داره به اینکه که صاحبش ببخشه. این هم اینشالله ارض خواهیم کرد چون مرموشه خودشون دارن در بخش فقهی از خواهیم کرد توی اده از روایات داره مثل همین رواید اما اینا ثابت میستن اینشالله از خواهیم کرد در باب قیبت اون مقداری که ثابته همونی که در بقیه احکام هست استغفار بکن الله استغفار له مثلا جمع بکنه بین هر دو تفاصیل شد هفتش قول هست اینشالله عرض میکنیم که اینا انصافاً ثابت نیست اون مقدار مثل بقیه گناهان خودش استخفار بکنه کافیه اما این مطالب توی بعضی از روایات هست نه اینکه نیست بعض سر حجیت اوناست یکیش هم همینه این هم روشن نیست و باز در جامعال اخبار بسر. بله باز در جامعه الاخبار داره من کتاب مسلمم فیش همزان لم یعجر علا سیامه این شاید به جای توفتر و سایم یعنی عجر نداره این هم الان به این مقدار روشن نیست باز در جامعه الاخبار شماره 33 این همه ارسال دارن و ضعیفن و خیلیشون در مسادر اهل سنت هم ضعیفن نفقط فیش ما سعید ابن جوهر رعن نبی به این مقدار باشه که قطعاً خرابتون سید اونجوری بلند نیاز الله ایشون از زین العباس تعریف میکنه انا النبی قال یو تا به احد الیوم القیامه یو قف بین الی الله و یسقى الیه کتابو اینم یک تایفه از روایات اینم یک طایفه از که شیخ شیخ انصاری بعضیش آورده این حدیث هم ضعیفه خلاصه این تایفه اینه که انسان اگر غیبت کسی کرد خیراتش به صحیفه اعمال اون مخاطب ال فر مییره و سیئات او به تایبه میاد طبعا چه این مطلبی که چون مذهبی قیامت هم هست این جور مسائل توقیفی صرف باید با روایات صحیح ثابت بشه مجرد اینکه یه دستور بیاد با ارسال و ابهام چین مطلبی رو نمیشه اثبات کرد چون جزو مسائل توقیفی است مربوط به قیامت این حدیث که الان صدر دیگه من نخوندم چیز نکتی ای که داره بله اینه از جمله احادیثی که باز همین مضمون داره در کتاب مستدرک از کتاب روزه شیخ مفید من امروز نشد مراجعه کنم یاد در کتاب از این روزه شیخ مفید چی هر چه مقوله‌ای هست نمیدونم واقعاً چیزی ازش وجود داره یره ان ال علیه السلام اذا كان يوم القيامه اقبل قومون على الله عزوجل فلا يجدون لأنفسهم حسنات همین که کم نه حسنات شو از اون صفحه‌ای دی که دیگه سیاتون آن تو صفحه‌ی شاد این هم اگر در از همین مقدار باشه اصلا من شان کتاب روزه ندم مال برمو شیخ چیه و چی در اختیار برمو صاحب مستدرک بوده که به اسم روزه شیخ مفید و هر حال به این مقدار که مرهوم شیخ مفید از امام باقیق قطعا مرسل از تو حجیه نظره مثل حدیث است. بعد بعد چیزی؟ براما؟ اینجا از اینجا نرفته کرده از روزه شیخ مفید حالا بعد از تا اینجا من به ترکیب دارم مخواهم به ترکیب قد داریم میریم شده اینجا کما تأکل و نار اله حلفا این که میگه قیبت تأکل حسنات کما تأکل و نار حلفا قیبت حسنات میخوره مثل اینکه آتش حلفا رو میخوره به اصلاح حلفا یه نوع به اصلاح سفزی خیلی هم بلند نمیشه سبزی مخصوصیه که اگر آنونی که حج مشرف شده بیرون محصد زلحلیفه هست هلحلیفه از همینی دیگه ماده حلفا هم جاست سبزی حلفا من صفحه زخشو میکرم دوتر دیم پای کوهی از این سبزی اونجا زیاده کما تأکل و نار الحلفا اگر حلفا باشه اگر چیز دیگه نباشه البته این غیبه تأکل و حسنات غیبه حسنات رو میخوره کما تأ از نظر علمی الان اسمش علوم طبیعی طب قدیم کیفیت اقل انسان قید از اطل آتشی ها این دوه با هم فرما میکنه. میاد اون بحثنش این یکی از بحث خارج میشه. بعد از ناریات تأکل حسنات نمیدونیم نسبتش با همچون یک بحث کلامی دیگه هم اینجا هست که آیا هفت قبول بکنیم یا نه چون منصوب شده بشه که قالب به هفت نیستن. ظاهر این عبارت شد با هفتش مناسب باشه. لکن یمکن ان یگال در عقلی که بشر انجام میده حرد نیست اما در عقلی که آشش اصطلاحا میگن حرد هست. دیگه یکیشه ولش کنین وقتی که صحبت کنیم فعلا باز نشه القص و راوندی سلوب اللباب این از رسول الله یا یوتا رجل کتابه فیرى حسنات لم یکن این پس سه تا حالا شما از تنبیه الخواطر هم فرمودی از سه مصدر ایشون الان نر می‌کرده جوامع اخبار و لب و لباب اقر رسول الله یکی هم از شیخ مفید در روزه اونی که ان الباقر هیچ کدوم به حساب سندی ارزش علمی ندارن وقتی اینجا داره لاکن ذهب عملت به اختیار بناز عقل نداره عمل صرف رفت رفتن با حق میسازه. حالا حالا وارد بحث کلامی نشیم مناسب در مرحوم به منصوب شده به کتاب زهدی که منصوب از حسین سعید اله حسین ابن الوان الان تو ذهنم نیست که حسین سعید بتونه از حسین ابن الوان بکنه ان امر ابن خالد که اسمشو بولدین پیروزا ان زید ابن علی ان آبایی ان نبی امسه در ربایت کتاب زید ابن علی اینطوره. طوره ان از سجاد ان عبیه الحسین ان عبیه امیر المؤمنین بعدش خاله هزی و بعدش رسول الله این همون کتاب معروف زید ابن علیس مصند زید حسین ابن اولوان توصیقه نداره مشهور توصیقش نکنه آقای خودی توصیق میکرده امر ابن هم اهل سنت اتفاق کذابش میدونن که اشد به مراتب زرف لیکن شیعه توصیقش کرده به خاطر توصیقی که در کتاب کشی هست از قبن فضل میگه ابن خالد سنت. ان سيدنا علی ابوالنبی قال تحرم الجنت على سلاس الا منان و علی المختار و علی مد من الخرج من در خودشون در ذیل فرمودن و یاتی فیروات زید شماره 16 اگر قاضی که کامپیوتر در یک زار همین طور چاپ شود کامپیوتر و یاتی روات زید شماره 16 هنه اقابل ارمال در باب 133 134 همینطور هست تو کامپیوتر پیتر کام اون شماره 16 قلط 12 اون شماره 134 قلط 133 سی این, این حالا این اطمان متوه اشتباه کرده حالا یه حالا آین در همین کتاب در همین مرادش هم همین کتابه کتاب خود جاماله همین شماره آین شماره باب 133 نه 134 اصلا باب 134 حدی، 16 تا حدیث هم در باب 133 شماره 16 12 ایشون نوشته شماره 16 اونم اشتباهه. احتمالاً غلط مصبعی باشه. در باب 134 یه دونه حدیث داره، فقط من یکی. شماره 12 از باب 133. ابي اسا العلماء مرحوم شيخ صدوق. ابي رحمه الله قال حدستانی احمد ابن ادریس که از بزرگان مشایخ قومه قال حدستانی احمد ابن عبی عبدالله که برقی پسر قال حدستانی عثمان ابن عیسی از کردم برقی پسر از یک از مشایخ کوفه در میکنم مثل عثمان ابن عیسی احتمالا یا کوفه دخل یا به نموی است الان شواهد تاریخی ما که چیز نمیکنه که ایشون برده وارد کوچه وارد کوفه شده باشه مشاهده می‌شه به سماده چوریه عبی باشه حدثن احمد عبی عبدالان عبی قاضی نیست عثمان ریسه و اجماع قابل قبول ان امر ابن خالد ان زید ابن علی الان خوندین را ان عبی اثر کردیم در عبی یعنی حذر سجاد ان عبی, انا عبی،, انا عبی، این عز مام یک انعایی دیگه هم افتاده قال قال علی این درست قال قال علی علیه السلام کهرم الجنت علی ثلاثه نمام و قتال و مدن الخرب حالا معلومه کتاب زید بن علی دو نسخه داشته هم مختاب داشته هم قتال علی اله البته اینجا قتات هم در ورزی از نسخ هست بله قطات که به اسطلاح قطات هم خودش نمامه باز نمام با اون یکی میشه پس این معلوم شد که دو تا کلمش محل کلامه یکی نمام که در یک نسخه منانه یکی هم قطال که در یک نسخه قطاله در یک نسخه هم مقتابه در این کتاب بکنم حسین سعیله مقتاب شده و یشود گیاه تیپوات زید من امروز مراجعه کردم به کتاب زید کتاب زید خیلی بزرگ نیست از کم شده اون جاهایی رو که امید داشتم پیدا بشه پیدا نکردم اگر اون توی کامپیوتر پیدا کردن از مصنف زید من بگم که این حاشیه نیست توی این نسخه مصنف زید که چاپ شده من گشتم هیچ متنشه پیدا نکردم نه اولی نه دومی نه متن مختاب نه متن قطال دیگه نوارا از یک نسخه دیگری بوده یا از کتاب مست من که فعلا پیدا کرد در کتاب حدیث شماره سی۷ اونتون حدیث صند فر نیست ش کتاب جامال اخبار مرحم قومی قال نبی این به فعلدن نسبت داده که خب ارسال منقطتاب مهممن به مافیه لم یجمعه الله و بین نه ها فل جمنت عابن یکی از آثار قیبت اینه که در مخاطب بالکس و الفت در بهشت ملاقاتی نخواهد شد و من اختاب مؤمنم به مالی سفی انقطع عتل اسمت و بینه همه البته اینجا کلمه مؤمن داره گفته شده مؤمن یعنی کسی که چیه اصناعشهی باشه و گفته شده نه مؤمن مسلمان انقطع عتل اسمت و بینه همه و کان المختابوف نار خالدن فیها و مسیر. المسیر این رو جامال اخبار به صورت مرسل برقوم قومی این رسول الله نقل کرده لیکن احتمال میدیم ولی علم و اندالله احتمال میشه ایشون در قوم بوده ببینید این صفحه 528 از این جامل احادیثه در صفحه 530 دقیقه بکنین شماره 51 هر از خواهی میشهد که سند دوم خیلی نقید نیست واضح نیست از صدوق در عمالیش نقل میکنه انه الگمه صاحب همین دعای الگمه محروف الگمه محمد حزمی این الگمه برادر از بکر حزمی هر دو یمنی هستن و محضمان بزرگوانی قال از صادق و جهتران و محمد و قد قلت الله اخبرنی امن تقبل شهاده تو یه حدیث بسیار یه چون نمیخواییم بخونیم همین محل شهادشو بگیم خیلی طولانیست و چیز یعنی عجیب و غریبی هم داره مطالبه این مطالبه لطیفی هم داره مثلا همین قصه ای که در سعی بخاری هست که پیغمبر این این رو فاطمه تو و بخاطر این که امیر و دختر ابو جهل رو به اصطلاح مخواستن ازدواج رو کنه. این داره علم ینسبوه علا انهو اراد انیست زبج ابنت ابی جهل علا فاطمه بله بله که اینا دروغه اینا اینقدر دروغ گفتند یا درباره احمد المؤمنین یا درباره خدا خیلی روایت قشنگ طولانی حدود دو صفحه است بله سه صفحه تقریبا دو صفحه است مثلا اون دو صفحه است این در صفحه 530 در تقریبا اوائل روایت اینطوری داره ولقد حدثني ابي عبی ابي ابيان امام باقر ابي امام سجاد ان آبایی ظاهرا مثلا ان الحسین ان علیه مثلا ان رسول الله قال من اقتاب مؤمنم به ما فی لم یشمه الا بین هما جنت ابدا احتمالا جامال اخبارم که قومیت از این گرفته که مسترش اینه و من اقتاب مؤمنم به ما لیسفی امقت عطل اسمتو بین ما یعنی دیگه اون ایمان و اخبت و برده به نشون نیست دروغش کفته و کامل مختاب و فنار خالظفی ها و بهثال مسیر خیلی عجیبه اگه واقعا از اون گرفته باشه عین الفازشین مونه نمیزنه احتمالا هم از همونجا گرفته بعد داره بعض جایی که قال اللقم قول شده سال اروع نازیه انصون عواعمل الامور مردم سنیا به ما ئله شدیدی رو نسبت میدن که دیگه خش دی محزهرففی وقتی توضیحی میدن. الان حدیث شماره سی و هفت که ایشون یک شماره برش زده عین حدیث شماره پنجاه و یکه این که در دو کتاب از قومی ها آمده در کتاب صدوق با سند و با مطم مفصل آمده در کتاب جرخربن احمد اقومی رحمه الله جامعه الاخبار به صدق مرسل آمده از اون حدیث شماره سی و هشت البته این لباید با به حرمت غیبت و بعضی از آثارش در قیامت ظهور آثارش در بیامات. حالیسه شماره سی و هش با ترال در لبول لباف و این از انبیا صبره. آلا الله موسی من مات تا این من رهیب فهوا آخر من یاد خلو الجنه و من مات مسران علیها فهوا اول من یاد خلو نه. مزمونش که چنگی بعدی این مقدار اثباتش مشکله و مخصوصا که به انبیاء اصابه اون داده شده حدیث شماره سی باز در مستدک از دعوات و قطرانی به نظرم هم لب و لبا و هم دعواتیشون چاپ شده به نظر اینطور باشه بعد که از بر باز هم از مراسیل اینها ست تا خسال ما من مسلم یمون فی واحدت من هن الا الله غامنان علالله ان یدخله الجنده ما داریم یه روحاتی بیدیم مزمون کسا ده که داریم آجا بیدن خدا مثلا تزمین کرده که وارد بهش کن بکنه بله رجل نیت و انلا یقتا به مسلمان فه اما تعالی داره کانه زامن الله همید خلال جمعه شماره چهل حدیث شماره چهل رو مرحوم کلیدین هر فرمونه از علی ابن ابراهیم از ابی ابن ابی عمر ان بعض اصحابی هی ان ابی الله علیه السلام و ظاهر الان فعلا اینجا مرسل حدیث مرحوم صدوق در امالی این حدیث رو نقل فرمودن فرمودن حدثنا محمد بن حسن صفار قال حدثنا ایوب بن نو قال حدثنا ابن ابی عمر البته خود من هم یک کمی شبهه دارم به هر حال مرحوم صدوق به دو واسطه از ابن عبی عمر نهار کرده خیلی عجیبه صفار و ایونو خود ایونو کاملا و بزرگواره خیلی اهل معنا هم بوده اهل معنویت هم بوده و صفار هم که جیب قدره محمد حسن صفار البته صدوق از صفار مستقیم نهار نمی کنه حالا قبلش ابن الولید بازم با سه طبقه از ابن عبی عمر خیلی به نظر میره مشکل باشه حدسان محمد ابن عبی عمر قال حدسانی محمد ابن همران انس صادق جعفر محمد قال پس معلوم شد که مرحوم صدو در ای که از ایوب نوح داشته از کتاب ابن عبی عمر اسم شخص آمده محمد ابن همران مرحوم شیخ مفید هم در کتابی که بیشان منصوب است نام اختصاص اینو آورده مرسله قال از ساده و السلام از کردم گاهی ارسال رو این جده که از یک کتاب بسیار مشهوریه تا نقل بکنن اهل فن میفهمن از اون کتابه مثلا از کتاب نبی عمر بوده هر کسی اهل فن بود تا میخونه قال از این کلام میفنن کتاب نبی عمر گاهی صدق به صدا. ارسال مال این شهرت کتاب در محیط های علمی و اما محمد ابن همران عرض کردم صابقا یک وقتی در بحث نجوم مفصلا متعرض شدیم یکم کمی طولانی که دو تا محمد ابن همران آوالین ذکر میکنی نهلی که در کتاب نجاشی آمده و توصیح کرده که محمد ابن همران پس پسر برادر زراره چون همران برادر زراره از محمد پسریشون گفتن مثلا ایشون توصیح نداره ما توضیح مفصلی رو که حالا خارج از بحثم بود این خارج شدیم عرض کردیم به نظر ما محمد ابن همران یکی نهدی با بدران زراری یکی فهم نمی و یه توضیح رو عرض کردیم به ذهن ما میاد چون این رو نایید بودیم کسی دیگه نوشته باشه یک استزحادی کردیم که بعضی از خاندان زراره سعی کردن خودشون رو از خاندان زراره خارج بکنن مال کغیه بوده چی بوده مثلا ایشون سعی کرده خودش نهدی قرار بده چون خود زراره و خاندان عرب اصیل نیستن اینا خودشون رو از عشیره شیبان، زرارته دهریان شیبانی. ایشون شیبانی نیست. به اوله، اون زمان مولا به اصطلاح هم پیمان با به اصطلاح خودشه داخل در بنی شیبان کرده بود. احتمال میدیم که عده‌ای از فامیل زراره این رو من توضیحش از کردم و ندیده بودیم قطعی. ندیده بودیم که مثلا اصحاب ما ملتفت شده باشن که این همون محمد بن همرام که فامیلش عوض کردن نه که فامیلی یعنی اشیره شو عوض کرده از شیبان رفته به ولی نه در جستش نهدارمون نهدی رفت به اونها و اونها ملحق شده اعز شده شک که نهدی یا نه از این که احتمال بسیار قوی محمد بن عمران سراده زوراست است و, و جبلغدی و نهدی ما نداریم این همونه اشیره شو عوض کرده البته این مطلب رو ما سابقا این بحث به اصطلاح نجوم متعرض شدیم اخیرنج یعنی شد یه قبل تصادفن داشتن این کتاب تاریخ آل زراره مال ابو غالب زراره میخوندیم یه مناسبتی در اولش داره که حجاج که آمد به کوفه به دنبال این افتاد که هرچی از خاندان زراره از پیگیری بکنه گفتم مثلا این خانواده معروفی هم در تشعیف لذا اده خودشون رو عوض کردم بعدی از این مطلبی که من به ذهنم بود. این رو عبطه اسمیشون نوشته نشده محمد ابن حالان. این مثل که یک واقع خارجی بوده یه فشاری بر خاندان زراره بوده ادهی سعی کردن از این خاندان خودشون رو خارج بکنن پس بنابراین اگر این سند که به اصطلاح مرحوم 112 اولش ابن الولید باشه شاید بشه قبول کرد با سه طبقه از کتاب ابن عبی رو نعروف کنه سند تا ابن عبی وامر معتمره این اول که بعدشه توی کتاب کافی هم بعض از خوابهه توی کتاب صدوق ارم محمد بن حمران رضا ذهن ما میاد که حدیث قابل اعتماد باشه البته در کتاب اصلا داره دیده باشه در مثبه آلفا وای ضعیفتون به محمد بن حمران چون خیال کرد این محمد بن حمران مثلا مشهوله یا اون کسابده از که توصیح مشهوله پس این حدیث صحیحه این تا اینجا راجع به سرد حدیث و مصدر حدیث که کتاب ابن ابي عمر از کلم معروف ترین کتاب ابن ابي که در اختیار صدوق بوده جزما در اختیار کليوز تو او موجود بوده یکی از کتاب بسیار معروف اصحاب کتاب نوادر ایشانه نوادر ابن ابي عمر 6 جلد بوده شواهد و شورحی کتاب بوده. در جای دیگه مطرح شده فعلا اینجا نیست به هر حال این کتاب کتاب معروف بوده هم کتاب نوادر رفیع شده است مهم بشین منقالفی مهممن معات، معت و عیننا و صمعت و اوضونا فوق من الذيین قالابله از درجل ان الذيین يحبون انتشعف الذيین آمنو انین يحبون انتشیع الفااحش و ف الذيین آمنو لها اعابان ع این رو از که به دو جهت تقریبا توسط شدهیم یکی اینکه این آیا مبار که این آیه در غبته که شیخ هم تو مکاسب آورده هر فلم غیر از, از آی لایختر چند تا آیه دیگه آورده این رو واسه یکی این آیه هم در این ان الذین یحبون اشیاء الفرج یک نکته دیگه اینکه لهام عذابون علی چون وعده آتش و عذاب داده شده جزء کوائره پس به این رواث مبارکه به دو جهت توسل شده یکی اینکه آیه شاملش میشه یکی اینکه جزء کوائره است مرحوم استاد طبعا له استادشون مرحوم روانی اشکال کردن که این آیه راختی به قیبت نداره چون این شیوا الفاحش است شیوا یعنی انتشار فاحشه ظاهرش هم انتشار فاحشه خود عمل زشت مثلا کسی سعی بکنه مجالس حساب رو زیاد بکنه که سر مثلا دو زیاد بشه که سر مثلا شوربه از مستجوب الله این اعمال زیاد بشه لذا گفتن این آیه راختی به قیبت نداره چون قیبت با یک دفعه گفتن ذکر میشه شیوا نمیخواد تو شما به یک نفر یک عیب مسطور یک نفر رو بگیر این شیوا هم نیست قیبت کردن لذا ممکن است قیبت جایی صدق روز به بزنی که شیوا باشه مرحوم آی خوی اشکالشون اینه مرحوم آی روانی هم این اشکال رو انجام میدن لكن بعد جواب میده آی روانه میگه از این که امام در روایت تطفیق خر بوده باید بگیم آیه شامل قیبت هم میشه لكن ظاهر عبارتیشان این نحوه تعبده اصلا تعبدن الا ابتداعا آیه مربوط به شیعه فاهش هست ربطی به قیبت نداره شون قیبت حرمتش هر حالو شیعه هم نباشه دقیق بکنیم بله به یه نحوه به حکر تابطیشه بله و نشه بله ظاهرش این طوره که همینطور که به ذهنی شما ظاهرش این آیه نازل نیست به خود شیاء فاهشه یوهبون انتشیع و ولذا این آیه در مثل مسئله تجری هم ذکر می یعنی کسی که علاقه داره همین که علاقه داره فاحشه پخش بشه همین علاقه داره محبت داره ظاهر آیه اینه و این که امام علیه سان تطویق می فرمان فهمن الذین قال الله تطویقه یعنی مثل و من یک نقسا فکنما قطر الناس جميعا من احياها فکنما احيا الناس جميعا یعنی اگر انسان یک کسی رو کشنسی که همه رو کشته خب اونجا اشکال معروفی هست که خب این خیلی بعیده چون بالاخره یکی, یکی یه نفر رو بکشه مثلا الان هفت 7 میلیارد جریعت وقال 7 میلیارد رو بکشه چطور میشه بگیم یکی مثلا حمه احمد رو لازم اونجا توضیح دادی میبخین تا این بحثو ارث کنه در اون آیه مبارکه تنزیل فرد مقابل همه مردم نیست اشتباه نشد تنزیل به لحاظ قاتله نه به لحاظ مختول خود دقفت بکنیم چون گاهی ممکن است تنزیل به لحاظ مختول باشه یعنی اگه یک نفر مختول شد مثل که همه مردم کشته شدن این نیست این تنزیل درست نیست اما تنزیل به لحاظ قاتل خود دقفت یعنی اگر کسی یکی رو کش همین همه رو هم دیگه. به حاضر،, حاضر قاتل تنزیله نه تنزیل به لحاظ مقتول این دو تو تنزیل فهم میکنم. این خیلی دقت اون در کلام اون ذرافت های کلام همیشه اینجوریه اینجا هم تنزیل فهمن الذین قال الله عزوجه یعنی درست این شخص قیبت یک نفر رو کرده پیش یک نفر رو اینجوری فرض کنیم لیکن کسی که میاد این کار رو میکنه خود این شخص یوهبون انتشی الفارشه اون هوب از درست شیه ها افاهه شنید کسی کی میاد ایده کسی رو پیش یکی میگه این در حقیقت علاقه داره این پخش بشه یعنی مشکل ندار بیدون افرادی هم بگه این قابلیت رو داره ولذا ممکن است از این جهت بگیم که این آیه مبارکه انتباق بر قیبت داره یعنی قیبت چون رو باید صدای صحیحه صورت ما در محمد ابن همران ارز کردیم. به احتمال بسیار قوی محمد بن امران جز اجلا یه اصحابه نه اینکه که به محمد بن امران که خویی نوشته تا آی خویی کتاب مثفال فقار وقتی که ایشون تحقیقات علمی نداشته رجالی نداشتن چون یک روایتی در کتاب عمالی شیخ صدوب رحمت الله علیه من ابن عبی عمر قاله حدستنا مشایخ من اصحابنا من هم فلان من محمد بن امران مثل ابن عبی عمر اونجز مشایخ اصحاب قرار داده اما اول مجلس دوم عمالی صدوب که چارتا آیره که افراد دخونن برای حالات مسهم هم و اینها خیلی حدیث قشنگ هم هست و تعبیل کرده مرحوم ابن عبی عمر از محمد ابن حمران مشایخ و اصحاب ها. انصافا این خود این حدیث هم کاشف از همینه خیلی دقیقه این حدیث من یعنی امام می خواهد بفرمانید برای شما یک بار غیبت بکنید لیکن به لحاظ حب نه به لحاظ عمل به لحاظ اینکه شما آمادگی دارین این مثل همونه نگید که من به یک نفر گفتم این شیاء فاهشه نشد به قطع نه چون در این آیه مبارکه شیاء فاهشه نیست حب به فاهشه ان لذین یو خبون انتشی الفاهشه راشتم دهی که اون چیزها اصلا که عیب مثل معمولی باشه که مثلا ظاهر خب همین اما مخت بفرماد این اینم اشکال دیگه داره خودی که ممکنه یک عیب باشه که فاحشه اصلا نباشه وقتی این ممکن است از این جهت باشه که خود این غیبت کردن فاحشه است دوباره بگو نه اون مضمونش همین که شما به یک نفر میگید خود این حب شیعه فاحشه است حب شیعه غیبت در اینجا آیه مبارکه آیه حاله به ذهن من میاد که این روایت مبارکه یک ظرافت های خیلی لطیفی به کار برده که نشون میده عظمت محمد بن همر را و ابن ابی عامر رو به نزا انصافا خود مرحوم آیه این روانی هم به همین آیه تمسک میکنه در اینکه دیو از جزء کبائر چون وعده اینا رو لهم عذاب علی چون وعده ناربر شده و روایت معتبر میگه غیبت هم از مصادیق آیه اون خوب بکنید. غیبت از مصادیق حب شیعه فارشیه، نه خودش یار چون از مصادیق آیه است، میشه به این حدیث مبارک توسل کرد برای اثبات اینکه غیبت جزو کبائر من از ذکرم مطالبش اینجا الان توضیحاتی خارجه، میگه در بحث صحیش اینا رو مسلم عرض میکنیم پس بنابراین یکی از عدله بل نظر... حرفی هم نیست حتی من رو می روانیم اشکال دارن قبول نمی کنن نا رو میگه می به لحاظ روایت و به لحاظ تطویقی که در این روایت مبارکه روی آیه مبارکه با غیبت شده میشه قبول کرد که اینطوره. و همین روایت در کتاب این عبالقاسم کوفی که از کنم کسی بوده جایی سیازت هم میکرده سید نبوده در کتاب اخلاب من قال فی اخی المومن یعلم من یعلم و من یوریدو بیه انتقا سفو فی نفسی و مروعتی فهمنن لدین آلالله عزیز خراب کرد خراب کرد خود مفروعاتی که ابن حبی همه نرکه از این کاری که این آیه خالی انجام داده وز اش بهتره و س